ارزش دوران سربازی در فرار گهگاهی از سربازی است. برای دیدن دوست شبان خود را به لب دیوار کشیدن، از لب دیوار به آن آنسو پریدن و به دل تاریکی دویدن و بعد چه لذتی دارد ساعتی را با تو بودن و تنبیهات انزباتی خدای من. اصل، این هیچ ربطی به وظائفی که بر عهده گرفته ایم ندارد. برنامه من که می‌توانیم با آشفت سازی آن به راستی از آن لذت ببریم مربوط به آن مدتی نیست که متعهدیم کاری را انجام بدهیم و درست هم انجام بدهیم. بانوی آذری من سعی کن حس کنی که چه می گویم. من کار کوچکی نکردم. حس می کنم حس می کنم حال بهتر از چند دقیقه پیش حس می کنم بگو عجب تهاجمی کردی زن چیزی نمانده بود که وا بمانم و نتوانم برخیزم و جوابت را بدهم ما نه فقط می توانیم روزها را جابجا جا کنیم که هفته ها را هم می توانیم وقتی یاد گرفتیم که برنامهای داشته باشیم و نظمی، می توانیم آن را چهار هفته ای کنیم تا اصلا یادمان برود که پنج شنبه چهار هفته پیش کجا بوده ایم بعد می توانیم برنامهای برای هر فصل بنویسیم و جابجایی را به فصل ها بکشانیم و حتی به سال یک سال تمرد دیگر تا به کتاب چه ات نگاه نکنی یادت نمیآید که فردا را چگونه باید بگذرانی و می توانی شادمان سرپیچی کنی اما گفتم که شرط اصلی تمرد وجود چیزی است که باشد تا بتوانی از آن تمرد کنی از آشفتگی نمی توان سرپیچید و واقعا باور داشت که تمردی اتفاق افتاده است از یک آشفتگی به یک آشفتگی دیگر از یک یاغیگری به یاغیگری دیگر این زندگیمان را زشت و نفرت انگیز می کند که کرده است تهواور، بی هویت، بی اعتبار، ابلهانه همچون زندگی راه زنان از نظم اما گاه به یاغیگری های شیرین پناه بردن از سایب آفتاب دویدن است و برای یاقیگری بزرگ آماده ماندن دستگرمی و همیشه می توانیم و خوب است که بازگردیم به برنامه دیواری من به یک آشغانه آرام برای آن که گیج نشویم و بدانیم به کجا می خواهیم برویم باید که بلیط ها و برنامه سفرمان را در جیب داشته باشیم مهم این است بلیط های یک سره فقط یک سره برای رفتن بعد به خودمان اجازه میدهیم که از این قطار در این ایستگاه پیاده شویم پسرک از اینکه بداند پدر و مادرش مختصری خل هستند چقدر خوشحال خواهد شد دخترکم ما گمان نمی‌کنم خیلی خوشش بیاید نمیآید او از یک گردن گذشته اما هنوز به ما نرسیده است هرگز هم نمیرسد. ممکن است از ما رد شود که می شود اما به ما نمی رسد هیچ عاشقی شبیه عاشق دیگر نیست چهار تا نوشیدنی خونک بی زحمت چشم آقا عزیز من بسیاری از راه ها را پیاده باید رفت سوارگان هرگز آنچه را که باید ببینند نمی بینند ببخشید آقا این بلیط ها چه مدت اعتبار دارد یک سال کاش که یک عمر اعتبار داشت توصیه می کنیم درست کنند که اعتبار آن یک عمر باشد برای همه جای وطن اما یک سر برگشتی در کار نباشد عجب به هر حال یک دایره را اگر یک طرف هم کنیم به جای اولمان میرسیم. می رسیم چاره نیست خانم ما زائر عاشق این خاکیم و بر عشق و زیارت قوانین حساب و هندسه حکومت نمی کند آقا این هم حرفی است برای خودش. و برای شما که از بام تا شام پشت این میز مینشینید و بریت سفر میفروشید اما هرگز به ناگهان خلواره بر نمی تا با همسر یا دوستی به سفری سه روزه بروید به جنگل های شمال، یا سواحل جنوب شما بیش از حد لازم آقلید و منظم آقا و این شما را نابود می کند خسته و پیر و عصبی عجب عجب شما الان برای کجا بلیط می گیرید خانم؟ برای صحرا؟ بله بله خیلی خوب است من هنوز صحرا را ندیدم آنجا می توانید مهمان دوستان ما باشید آقا با همسر و بچه هایم. البته آقا البته مرد برمیخیزد انگار که برای جنگیدن با اسفندیار. بانوی من به تو گفته بودم که آشفتگی از نظم پیروی می کند. نگفته بودم؟ چرا؟ صد بار؟ پس فعلا میتوانیم در اولین ایستگاه پیاده شویم. کویر، نگاه کن؟ تمامش نمک هست من و تو هیچ وقت نمکی نبوده ایم نه سبلان شور است، نه گیلان اینجا بمانیم، هر قدر که تو می رسیدیم، تصمیم بگیرید پیاده شویم؟ بشویم شما هم موافقید؟ البته، البته، خلبازی است دیگر خیلی خوب است هر وقت که بخواهیم، حتی همین امشب، می توانیم با قطارهای دیگری که از راه می رسند به سوی مقصدمان حرکت کنیم. البته اگر جای خالی داشته باشند. اصل می خندد. اصل وجود مقصد است و هدف نه؟ میگویم گویم بله بانو. مقصد زندگی را معنی می کند. هدف زندگی را عمیق می کند. تازه زندگی را وجود مقصد معنی می کند. نرسیدن به مقصد. چکری آقا، یک چمدان کوچک داریم، تا کیف دستی که خودمان میبریم. دلش را نشکن مرد؟ بده ببرد. پدرجان، بچه ها میگویند محبت کنید اینها را ببرید پایین. شما اینجا یک مهمان تمیز ارزان سراغ ندارید؟ دیگر میدانم، از حفظم، اصل وجود برنامه است و پیوسته نگاه کردن به آن. نمتابعت همیشگی از آن. آه، بله، پس چرا اینقدر دیر دانستی بانوی خوب آزری من؟ چرا اینطور به گریم انداختی؟ بله، قیبت، قیبتهای غیر موجه. هیچ چیز به قدر یک قیبت غیر موجه شیری نیست. ما به بچه های من هم یاد می دهیم که گهگاه، به شکلی کاملا غیرموجه قیبت کنند. آنها را از مدرسه دنیا که بیرون نمی‌کنند، می‌کنند؟ اما این آشکارا تعلیم یاقیگری است. نباید باور کنند که همیشه می‌توانند از این قاعده استفاده کنند. کدام قاعده اصل؟ قاعده همان برنامه هفتگی است. نظم سروازخانی، انشاء، املا، ریاضیات، ورزش. ما میخواهیم رسم استثناء برقاعد بودن را یاد بچه هایمان نه بدهیم، نقواعد را، درجا دویدن برای آن که دویدن از یادها نرود، تمرین یاغیگری برای روزهای مبادا، عدم اطاعت از فرمان نیز، خود نوعی اطاعت است،